فاطمه زهره سلام الله علیها ها وقتی احساس کرد وظیفش اینه باید از علی حمایت کنه تمام وجودش رو برای حمایت از علی به کار برده ولی معروفه که از امروز به بعد دیگه صورتش رو از علی می پوشونه با این که علی شیفته فاطمه است و فاطمه شیفته علیه، اینا وقتی به چهره‌ی همدیگه نگاه کنن مسرور میشن. چرا فاطمه چهره‌شو از علی میپوشاند وقتی چهره نیلی است، میخواد شوهر آزرده نشه که من در خانه بودم و چهره‌ی همسرم رو نیلی کردن، لذا علی رنج نبره. معروف در دوران حکومت ظاهری امیرالمؤمنین در کوفه، میگه چند تا از یاران علی تو مسجد بودن. با هم دیگه بس می‌کردن چه مشکلی برای یک مرد از هر مشکلی بیشتره یکی گفت قرض داشته باشه یکی گفت چنین باشه یکی گفت چنان باشه یه وقتی دان علی از راه رسید گفت <محن> <محن> بهتر از مولا بپرسیم پرسیدن آقا جون چه مشکلی برای یک مرد از هر مشکلی دردناک‌تر دیدن رنگ چهره علی زرد شد اشک از چشماش جاری شد گفت وقتی که جلو چشم شوهر همسرش رو بزنن ولی شوهر از نظر ای مجبور باشد که سکوت کنه زهرا میدونه علی مجبور سکوت کنه لذا برای اینکه علی رو نیازاره چهره رو به علی نشون نمیده بعدشم وسیعت میکنه علی جان شبانه غسل بده شبانه کفن کن و شبانه دفت کن اهل دلی میگه دفن شبانه رو میدونم میخواد قبرش مخفی باشه کسی نفهمه اما غسل شبانه مشکله کفن شبانه مشکله چرا؟ میگه در عالم رؤیا به من فهموندن میخواستم در دل تاریکی شب علی ودن من منو غص بده شاید متوجه جراحات وارده من نشه و رنجش کمتر باشه اما اسما میگه نیمه های شب بود سلمان حسنین رو به زحمتی آرام میکرد فزده داشت زینب این رو تسلی میداد من آب می بردم. علی بدن فاطمه رو غسل میداد سلمان سفارش می کرد. بچه بچه‌ها صدا بلند نکنن مردم بیدار نشن فزه تسلی میداد دخترها گریه نکنن مردم بلند نشن اما یه وقتی دم خود علی سر به دیوار میخاض بلند بلند شروع کرد ناله زدن دویدم علی جان بچه ها رو ساکت می شما نره می‌زنی فرمود ما دست از دلم بردار در حال غسل دادن دستم به پهلوی شکسته زهرا برخوند